دوستان خوبم، به دانشکده کوچک کتاب مقدس برای بررسی مقدماتی کلام خدا خوش اومدیم. این دوره با بررسی کتاب پیدایش شروع شد و بعد از نوت درس به عهد جدید رسیدیم. اگر از اول با ما همراه بودید، مطالب زیادی رو تا کنون یاد گرفتیم و حالا میخوایم عهد جدید رو هم طی نوت جلسه بررسی کنیم که در حال حاضر یک سوم اون رو پشت سر گذاشتیم در درس امروز انجیل یوحنا باب 13 رو بررسی خواهیم کرد و از ضمن اون چند ساعت آخری رو که عیسی با شاگردانش وقت داشت مطالعه خواهیم کرد عیسی مطالب زیادی داشت که اون روز میخواست به شاگردانش یاد بده و امروز هم میخواد به ما تعلیم بده پس اومیم ما اینه که خدا های روحانی شما رو باز کنه تا اون چرا او میخواد تعلیم بده یاد بگیرید. در باب سیزده انجیل یوحنا عیسی خدمت عمومی خودش رو به همون ترتیبی که با یک گرده همایی شروع کرده بود با گرده همایی دیگری به پایان میبره. ما معزه سرکوه عیسی رو اولین گرده همایی مسیحیان گفتیم و مباحثات او در بالاخانه را آخرین گرده همایی مسیحیان میگیم. این تعلیمیه که عیسی در همون گرده همایی به شاگردانش داده. به اونها گفت به شما حکمی تازه میده هم که یک دیگر را محبت نمایید چنانکه من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید ما وقت اینو نداریم که تک تک بابهای یوحنا را بررسی کنیم بلکه سعی خواهیم کرد در این بررسی اجمالی یوحنا روی کرد این انجیل رو با شما در میون بذاریم در این دوره های بررسی اجمالی کتاب مقدس فقط وقت خواهیم داشت نحوه پرداختن به انجیل یوحنا رو با شما در میون بذاریم. اساساً به هر باب با این انتظار می‌پردازیم که یوحنا جواب این سه سؤال رو به شما بده. عیسی مسیح کیه؟ ایمان چیه و زندگی چیه؟ معتقدم در تمام بیست و یک باب این انجیل یوحنا به شیوایی به این سه سؤال پاسخ داده. اساساً این نحوه روکرد من به انجیل یوحنا هست. در پایان باب دوازده یوحنا عیسی به سه سال خدمت آشکارا و عمومی خودش پایان میده. در تمامی انجیل یوحنا شما این اظهار رو خواهید شنید. وقت او هنوز نرسیده بود. وقت او هنوز نرسیده بود. مردم سعی کردند او رو سنگسار کنند، اما موفق نشدند، چون که زمان او هنوز فرا نرسیده بود. با این وجود در باب دوازده شما این کلمات هیرتنجیز رو میشنوید. ساعتی رسیده است که پسر انسان جلال یابد. عیسی دعا میکنه و به پدر میگه پدر زمان فرا رسیده. که در اینجا منظور از زمان مرگ او هست او در ادامه چی میگه؟ پدر مرا از این ساعت رهایی ده اما برای همین منظور به این ساعت رسیدم پدر نام خود را جلال ده ناگاه صدایی از آسمان در رسید که جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد و به این ترتیب عیسی سه سال خدمت عمومی خودش رو به پایان میبره عیسی میگه اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند، لکن اگر بمیرد، ثمر بسیار آورد. به زبان ساده او در باب دوازده وقتی با صلیب مواجه میشه این دعا رو میکنه. ای پدر اسم خود را جلال بده. ناگاه صدایی از آسمان در رسید که جلال دادم و باز جلال خواهم داد. عیسی در باب دوازده به ما تعلیمی درباره قربانی کردن زندگی های خودمون میده. به این منظور که اون رو واقعا به دست بیاریم. به هر حال خدمت عمومی او در پایان باب دوازده خاتمه پیدا میکنه در باب سیزده تا شانزده عیسی با مردانش در بالاخانه یکجا جمع میشه خدمت او الان تموم شده و او قبل از اینکه مصلوب بشه آخرین ساعات عمرش رو با این دوازده نفر به سر میبره عیسی به این مردان تعلیمی رو میده که ما بهش مباحثات بالاخانه گفتیم مباحثات بالاخانه طولانی ترین گفتگوهایی هست که از عیسی ثبت شده در واقع این یک بحث نبود وقتی به این چهار باب می یوحنا 13 تا 16 ملاحظه می کنید که مثل اکثر تعالیم ایسا تعالیم بالاخانه هم به صورت گفتگو هست و در پایان باب 13 و در ابتدای باب 14 در میانه این مباحثات رسولان از عیسی سوالاتی از این قبیل می‌پرسند که کجا داری میری و چرا من نمی‌تونم بیام؟ خداوندا راه این چی هست؟ خدایا پدر رو به ما نشون بده و من راضی خواهم شد یا این سوالات رو میپرسن چطور وقتی ما رو ترک کردی خودت رو بر ما آشکار خواهی کرد و خودت رو بر غیر ایمانداران اطراف ما آشکار نخواهی کرد رسولان سوالاتی نظیر اینها میپرسیدند وقتی که عیسی به اونها پاسخ میداد در واقع تعلیمی به اونها میداد که به اون مباحثات بالاخانه گفتیم دیدگاه دیگر در این گفتگو میتونه این باشه یادتونه که عیسی خدمت خودش رو با یک گرده همایی شروع کرد که بهش اولین گرده همایی مسیحیان گفتیم. گردهمایی همایی که به معزه بالای کوه معروفه و در باپی پنج تا هفت متا اومده. به نظر من این خیلی جالبه که عیسی خدمتش رو با یک گردهمایی همایی شروع میکنه و با گردهمایی همایی دیگری به پایان میبره. ما نمیدونیم در اولین گرده همایی مسیحیان چند نفر شرکت کرده بودن. شاید یکصد نفر یا بیشتر، اما در آخرین گرده همایی به نظر میرسه که تنها اون دوازده نفری حضور داشتند که به او واقعا ایمان داشتند و آماده بودند او را پیروی کنند. او در پایان اولین گرده همایی مردم را دعوت کرد و به نظر میرسه که در پایان خدمت او فقط دوازده نفر به این دعوت پاسخ داده بودند. عیسی تمام سه سال خدمت عمومی خودش رو با این دوازده نفر سپری کرد. او همیشه با اونها بود. وقتی او با انبوه مردم مواجه می شد, اونها همیشه حاضر بودند او به اونها تعلیم میداد اونها رو راهنمایی کرد و اونها رو سرپرستی می کرد. در پایان سه سال او آخرین تعالیمش رو با اونها در میون گذاشت به زودی رسولی که قرار به او خیانت کنه اونجا رو ترک میکنه و بعد از اون فقط یازده نفر میمونه وقتی بیشتر مکالمات بین اونها رد و بدل میشه فقط یازده نفر با عیسی اونجا مونده بودن. عیسی این آخرین گرد همایی مسیحیان رو با کاری نمادین شروع میکنه. او ردای خودش رو در میاره و هولی به کمر بیبنده که این کار رو بردگان میکردن. بعد او آبی توی تشت میریزه و شروع به شستن پاهای رسولان میکنه. ما میخونیم که او شروع به شستن پاهای شاگردان میکنه. کتاب مقدس این رو اینطور عنوان میکنه. چون وقتی او به پتروس میرسه پتروس ممانعت میکنه. پتروس احتمالاً پنجمین یا ششمین نفر بوده و وقتی عیسی به پتروس میرسه او میگه، ای آقا تو پاهای مرا میشویی. عیسی باید گفته باشه همین طور پتروس. من پای پنج نفر رو شستم و حالا تو نفر بعدی هستی و بعد از تو دیگران هم هستن. ایسا خیلی پتروس رو تحمل می کرد. او اینطوری پاسخ نمیده. او فقط میگه پترس پتروس کاری که من الان می تو الان درک نمی کنی. اما بعد درک خواهی کرد. این آیه زیبایی در یوحنا باب سیزده هست. گاهی به نظر میرسه این تنها آیه, آیه که خدا در بهبهه طوفان زندگی به ما میده تو کاری که من الان میکنم رو درک نمی کنی اما روزی خواهی فهمید من گاهی این آیه رو برای کسانی میخونم که کنار قبر عزیزان از دست رفته غمگین نیست دادند و و نظر میرسه پتروس منظور عیسی رو متوجه نشده و به عیسی میگه تو هرگز پاهای منو نخواهی شست من این اخلاق پتروس رو دوست دارم و همیشه به خداوند میگه که چیکار کنه بعد عیسی در پاسخ او میگه اگر تو را نشویم تو را با من نصیبی نیست. باید دائما این تمیزی باشه وگرنه ما هیچ رابطه ای با هم نخواهیم داشت. وقتی پتروس اینو میشنوه باز هم به خداوند میگه که چیکار کنه. پتروس میگه پس من میخوام حموم کنم. پس ای خداوند نه تنها پاهای مرا بلکه دستها و سرم را نیز بشو. عیسی میگه کسی که قص کرده نیازی به شستشو نداره به جز شستن پاهاش. او از سر تا پا تمیز و شما پاک هستی ولی نه همه اون موقع رسم بر این بوده که وقتی کسی برای شام به خانه کسی میرفت باید پاهای او رو می شستن. این یک مثال روزمره متداول بود که معمولا عیسی هر روزه به کار می برد. چیزی که عیسی به پتروس می گه اینه پتروس وقتی تو از نو متولد شدی با تبدیل شدن حمام کردی تو هنوز مجبوری که توی این دنیا زندگی کنی و وقتی در این دنیا راه میری پاهای تو کثیف میشه وقتی پاهات کثیف میشه تو دیگه به حمام دیگری نیاز نداری که از نو متولد بشی فقط لازمه که پاهات شسته بشه وقتی عیسی داره این چیزها رو تعلیم میده پتروس حرفش رو قطع میکنه با این حال نظریه ای هست که بر طبق اون خداوند واقعاً حرفش رو قطع نمیکنه وقتی عیسی شستن پاهای همه رو تمام کرد به سوالات پتروس پاسخ داد به اونها میگه آیا فهمیدید برای شما چه کردم این سوال زیبایی هست. من معتقدم که جواب این سوال در آیه اول باب 13 داده شده او وسعت محبت خودش رو به اونها نشون میده عیسی سه سال با این مردان بود و اونها با او همراه بودن. سه سال اونها رو محبت کرده بود اونها رو محبت های کوچک کرده بود از راهای زیادی از وقتی که اونها با عیسی ارتباط داشتن میدونستند که عیسی اونها رو دوست داره وقتی پاهای اونها رو شست اونها رو محبت کرد این دقیقاً یکی از راههایی بود که او محبتش رو به اونها نشون داد. بعد عیسی این کاربرد رو مطرح کرد. شما مرا سرورم و خداوند خطاب می‌کنید و من پاهای شما رو شستم. حالا او بمب بیروی روی اونها میندازه و با مکاشفهی جدید اونها رو غافلگیر می‌کنه. عیسی گفت اگر من که خداوند و سرور شما هستم پاهای شما رو شستم شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. بعد اضافه میکنه به شما فرمان تازه ای می دهم یکدیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتهم شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. تجسم کنید این فرمان در نظر اون مردانی که پای سفره نشسته و به هم نگاه میکردند چه معنی داشت. یادتونه که وقتی رسولان رو مطالعه کردیم شما دیدید که اونها خیلی خیلی متفاوت هستند. اونها یک چیز مشترک داشتند وقتی در بالخانه گرد آمدند اونها با مردی به نام عیسی ملاقات کرده بودند که اونها رو محبت کرده بود و اونها هم متقابلا رو محبت کرده بودند. اونها در این مشترک بودند. اونها همه عیسی رو دوست داشتند چون عیسی هم اونها رو دوست داشت. اما من فکر نمی کنم این فکر حتی به ذهن اونها هم خطور کرده باشه که همدیگر رو محبت کنند. فکرش رو بکنید چقدر اونها متفاوت بودند. متا هست که باجگیره. او یک خائن است. و برای رومیان مالیات جمع میکنه بعد شمعونی که به شمعون قیور معروفه او جنگهای پارتیزانی علیه رومیان میکنه و معتقده که باید به مقاومت در برابر رومیان ادامه داد این دو چه نقطه مشترکی با هم داشتن من میتونم تجسم کنم که وقتی عیسی گفت همدیگر رو محبت کنید چشم اونا به همدیگه افتاده بود میتونم فکرشو بکنم که شمعون گفته او رو من او رو محبت کنم من پاهای او رو بشورم حتما شوخی میکنید اما البته عیسی این رو جدی میگفت چون که اگر دنیا میدید که یک آدم متاسب پای یک باجگیر رو میشوره اون موقع میفهمید که چیز متفاوتی در مورد اینها وجود داره عیسی گفت اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستی. یوحنا در انجیلش به ما سه خصوصیت یک شاگرد رو میده در باب هشت عیسی گفت اگر در کلام من بمانید به راستی شاگرد من خواهید بود بنابراین یک شاگرد کسیه که دائما در کلام عیسی میمون در باب 13 عیسی میگه اگر نسبت به یک دیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید در باب 15 عیسی میگه اگر ثمر آورید شاگرد من خواهید شد اینها سه شرط شاگردی بنا به گفته ی انجیل یوحنا هستند میخوام در این درس شما را به چالش بکشم آیا شما شاگرد عیسی مسیح هستید آیا به طور مرتب و دائما در کلام او میمانید؟ با فیض خدا آیا شاگرد مثمر سماری برای عیسی هستید؟ آیا چنان محبتی در قلبتون نسبت به ایمانداران دارید که بدونید از خودتون نیست؟ گاهی این سوال مطرح میشه آیا مسیحی هستید؟ این سؤال گاهی سبب سردرگمی میشه چون که کتاب مقدس کلمه مسیحی رو به این صورت بکار نبرده کتاب مقدس کلماتی نظیر شاگرد بکار برده بنابراین سوال من از شما اینه آیا شما شاگرد ایسای مسیح هستی؟ اگه جواب شما مثبته سوال بعدی من اینه آیا شواهد کافی وجود داره که شما رو بر اساس این سمعیار شاگردی که یوحنا به ما داده ملزم کنه؟ این چیزیه که در خور تعمل هست عیسی سه سال خدمت عمومی خودش رو با این سخنان خطاب به رسولان به پایان میبره یک دیگر را دوست بدارید همانطور که من شما را دوست داشتم. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید همه خواهند فهمید که شاگردان من هستیم اینو در خانواده خودتون به کار بگیرید من و همسرم سه دختر و دو پسر داریم ما ضمن تربیت این فرزندان مطالب زیادی یاد گرفتیم با خواندن کتابهای زیادی یاد گرفتیم که باید جلو بچه هامون مهربونی نشون بدیم به عبارت دیگه والدین باید در مقابل بچه ها با همدیگه مهربون باشند. ما اینو شیوه زندگیمون قرار دادیم یه روز سر صبحانه خم شدم و گونه ی زنم رو بوسیدم دخترمون که داشت آماده میشد بره مدرسه در حالی که داشت بیرون میرفت پرسید وقتی ما خونه نیستیم شما همش این کارو میکن من توی خیلی از کتابها خونده بودم که این خیلی خوبه که او فکر کنه وقتی خونه نیست ما همش همدیگر رو محبت میکنیم چون این به او حس خوبی در مورد روابط زناشویی میده در اتاق بالاخانه عیسی به رسولانش می میگفت ما یک پیام داریم که به دنیا برسونیم و اون پیام محبته میدونید چطور باید پیام محبت رو برسونید؟ به همدیگه کنار سفره نگاه کنید همدیگر رو محبت کنید وقتی شما همدیگر رو محبت کنید تمام دنیا خواهند فهمید که شما شاگردان من هستید وقتی کلیسه های اولیه مورد آزار قرار می گرفتند غیر ایمانداران در استادیوم های ورزشی جمع میشدند تا مسیحیان رو ببینند که به روش های عجیبی کشته میشدند اونها فریاد میزدند و حیرت زده میگفتند حالا اونها چطور همدیگر رو دوست دارند ببین چطور همدیگر رو دوست دارند کتاب شهداهای پاکس میگه که غیر ایمانداران از صندلی های خود میافتادند و میمردند چون که خیلی تحت تاثیر عظمت محبتی بودند که مسیحیان نسبت به هم دیگه داشتند من معتقدم که این ماهیت روشی هست که عیسی در اون آخرین گرده گردهمایی شروع کرد تقریبا مثل اینه که عیسی پیام مراسم تدفین خودش رو پیشاپیش در بالاخانه با به 14 می میکنه من اغلب فکر می کردم که حالا که ما تجهیزات الکترونیکی پیچیده ای داریم این می تونه فکر مههجی باشه که تمام آین تطفین خودم رو ترک کنم و معظ تطفین خودم رو زبط کنم فکر کنید که چقدر غ انگیز می شد وقتی خداوند من منو میبره و همه مردم برای یادبود من جمع میشن تصور کنید که صدای من از سیستم صوتی پخش بشه من حتی فکر اینو می کردم که این یک دعوت باشه و یک پیام بشارتی هم بدم این میتونست آخرین فرصت من برای موعظه انجیل مسیح باشه آیا به نظرتون خیلی موثر نمیشد؟ نظر بر این هست که عیسی در باب چهارده همین کارو کرده عیسی خواهد مرد عیسی میدونه که طی ساعات آینده مصلوب خواهد شد عیسی اینو میدونه این اساس چیزی هست که عیسی در بالاخانه به شاگردانش میگه در اون فضا عیسی به رسولان میگه من خواهم مرد اما دل شما مسترب نشود. چون جایی هست و من میرم که برای شما جایی مهیا کنم و روزی من و شما در اون مکان تا عبد با هم خواهیم بود. دل شما مسترب نشود چون که مکانی وجود داره. بعد عیسی گفت دل شما مسترب نشه چون که شخصی وجود داره. من شما رو یتیم نخواهم گذاشت و رها نخواهم کرد. من شما رو تنها رها نمی کنم. شخصی رو براتون خواهم فرستاد. شخص روح القدس رو. و چون این شخص با شما خواهد بود و هیچ کدام از شما تنها نخواهید بود، پس دل شما مضطرب نشود. بالاخره عیسی گفت دل شما مضطرب نشه چون که آرامشی هم خواهید داشت. اگر به خدا ایمان دارید و به من ایمان دارید، پس دل شما مضطرب نشه. چون که مکانی وجود داره، شخصی وجود داره و اگر شما به اون مکان و به اون شخص باور کنید و وقتی او میاد به اون متکی باشید، آرامشی هست که تجربهش خواهید کرد. همین مردانی که در بالاخانه با عیسی ملاقات کردند به طرز وحشتناکی مردند سوابق نشون میدن که یوحنا اون روغن داغ جوشانیده شد اما اون نمرد اونها او رو به جزیره پاتموس تبعید کردند جایی که در اونجا کتاب مکاشفه رو نوشت یوحنا تنها فردیه که در پیری به مرگ طبیعی مرد براساس اساس تاریخچه کلیسا باقی رسولان به طور وحشتناکی کشته شدند وارونه به صلیب کشیده شدند، با شمشیر به دو نیمه شقه شدند، در صلیبی به شکل ضرب در مصلوب شدند و توسط حیوانات وحشی تکه تکه شدند. یک چیز که در مورد این رسولان میتونم بگم اینه که اونها صرف نظر از اینکه چطور کشته شدند، با آرامش کامل مردند. چون موقع مرگ شخصی با اونها بود. رسولان با تمام قلبشون ایمان داشتند که جایی هست که اونها تا ابد در اونجا با عیسی خواهند بود. این روی کردی به انجیل یوحنا چهارده هست که از بطن گفتگوی بالاخانه حاصل میشه. نگرش دیگر به این مباحثه ملاحظه سوالاتیه که رسولان در انتهای باب سیزده از عیسی پرسیدن و جوابهای عیسی به سوالات اونها هست. پتروس پرسید خداوندا کجا خواهی رفت؟ و عیسی جواب داد جایی که میروم تو حالا نمیتوانی به دنبال من بیایی اما بعدها خواهی آمد. پتروس گفت ای چرا نمیتوانم همین الان دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را به خاطر تو بدهم. این در پاسخ به اون اظهار و سوالی بود که عیسی در آیه یک باب چهارده گفت دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکل نمایید. به من نیزیمان داشته باشید. تومای شکاک به عیسی گفت ای خداوند ما نمیدانیم تو به کجا میروی پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم؟ ایسا با جمله هیرتنگیزی به تو ما جواب داد. من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. بعد فیلیپوس بازرگان همیشه مشغول به عیسی گفت ای خداوند. پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی در بالاخانه 48 بار به پدر اشاره می او 124 بار در انجیل یوحنا به پدر اشاره کرده. فیلیپوس میگه این پدر پدری که همیشه ازش صحبت می کنی به ما نشون بده. فیلیپس به عنوان یک بازرگان همیشه دنبال نتایج بود. در پاسخ به درخواست فیلیپس، عیسی جوابی میده که به نظر من جوهر مباحثات بالاخانه هست. فیلیپس به او گفته خداوند، پدر را به ما نشان بده و این برای ما کافی است. عیسی به او گفته فیلیپس، در این مدت طولانی من با شما بودم و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هر که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟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 این یکی از حیرتنگیزترین چیزهایی بود که عیسی در بالاخانه گفت منظور عیسی باید از کارهای بزرگتر به لحاظ کمیت بوده باشه نه نکیپیگر منظور عیسی این بود که تعداد زیادی ایماندار خواهد بود که در هر کجا حضور خواهند داشت من با یک بدن محدود شدم بنابراین شما کارهایی بزرگتر از من انجام خواهید داد عیسی داره میگه اگر همونطور که من و پدر یکی هستیم شما هم با روح حلقدس یکی باشید کلام خدا توسط شما بر روی زمین پخش خواهد شد و کار خدا توسط شما بر روی زمین انجام خواهد شد. به نظر من این خیلی هیجان انگیزه. بعد از اینکه اون حقیقت بزرگ رو با رسولان در میون میذاره، باب پونزده به ما میگه که اونها به باغ جتسیمانی رفتن. وقتی که در باغ بودند، عیسی تاکی رو با شاخه ها و میوه های روش گرفت و به شاگردان نشون داد. و یکی از بزرگترین تمثیل‌هاش رو به ما داد. او چیزی رو که در اتاق بالایی تعلیم داده بود حالا با مثال نشون میده. او میگه مثل این میمونه، این تاک رو اینجا میبینید؟ آیا میبینید که شاخه‌ها چطور به این تاک وصل شدن؟ به طوری که اون شیره حیات بخش توسط تاک به شاخه‌ها منتقل میشه و سبب میشه میوه‌ها بر روی شاخه‌ها تولید بشن. در این مثال عیسی میگه من تاک هستم و شما شاخه‌ها. میوه ها کار خدا هستند که توسط خدا انجام میشند و کلام خدا توسط شما صحبت میشه. پدر من باغبان هست. وقتی شما در من بمانید، همانطور که این شاغه ها در تاک موندند، شما میوه خواهید آورد. بعد پدر من شما را حرس خواهد کرد تا میوه بیشتری بیاریید. اما اگر در من نمانید و میوه نیاورید، پدر من شما را قطع خواهد کرد و به داخل آتش خواهد افکند. در این بابیسا شروع میکنه. به تشویق کردن در مورد گفتگوهای بالاخانه. او مسئله تاک و شاخه ها را آورده. او گفته که منظورش از میوه یا میوه آوردن چی بوده؟ به قول ایسا سمر آوردن یعنی پخش کلام خدا توسط شما و انجام کار خدا توسط شما. عیسی بعد شش دلیل میاره که چرا باید میوه بیاریم؟ عیسی سه سال با شاگردان یکجا بوده. اونها در حال فارغ و تحصیل شدن از دانشگاه او هستند داره نشان فارغ و تحصیلی اونها رو بهشون میده شما قبل از هر چیز باید میوه بیارید او میگه چیزی به نام شاگرد بی عیسی وجود نداره حالا این چیز ترسناکیه که میگیم من اینو نگفتم عیسی خودش گفته عیسی گفته اگر چیزی به نام شاگرد بی سمر وجود داشته باشه شاخه‌ای که میوه نیاره پدر من اون رو خواهد برید و به داخل آتش خواهد افکند چیزی به نام شاگرد بیسمر من وجود نداره که هیچ میوهی نیارد، بعضی ها سی، بعضی ها شست و بعضی ها صد برابر سمر میارند، بعضی ها میوه میارند، بعضی ها میوه کمی میارند، بعضی ها میوه بیشتر اما تمام شاگردان من سمر خواهند داشت، شما باید میوه بیارید وگرنه شاگرد من نیستید و سومین نصیحت او این بود، شما باید سمر بیارید چون به این ترتیبه که میتونید به دنیا نشون بدید که شاگردان من هستید بل لحاظ سمر ثمر بودن عیسی مسیح مسمر ثمرترین انسان این بود که تا کنون به دنیا اومده ما مبنای تاریخ رو از زندگی او گرفتیم قبل از اینکه او زندگی بکنه و بعد از اینکه او زندگی کرد این تأثیری که او گذاشته این طور نیست اگر شما بگید که شاگرد او هستید پس بهتره که ثمر بیارید چون اینطوری میتونید به دنیا نشون بدید که شاگرد او هستید شما یکی از کسانی هستید که کار خدا توسط او انجام میشه و کلام خدا توسط او موعظه میشه بنابراین شما باید مثمر سمر باشید چون که ثمردهی یکی از شرایط شاگردی هست سومین نصیحت او این بود شما باید ثمر بیارید چون به این ترتیب خدا را جلال میدید ما در باب 17 آیه 4 میبینیم که عیسی درست قبل از اینکه مصلوب بشه به پدر گفته من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم عیسی با به پایان رساندن تمام کاری که پدر به او معموریت داده بود او رو جلال داد. ما چطور خدا رو جلال میدیم؟ بر طبق آیین ما، هدف نهایی انسان جلال دادن به خدا و لذت ابدی از حضور او هست. شما خدا رو چطور جلال میدید؟ عیسی گفت با مسمر سمر بودن. بنابراین شما باید مسمر سمر باشید چون به این ترتیب میتونید خدا رو جلال بدید. چهار رومین نصیحت او این بود. شما باید مسمر سمر باشید تا شادی شما کامل گردد. شادی به یک بار از آسمان بر روی زمین و بدون تبعیض برای همه نمی ریزه. بر اساس کتاب مقدس برای شادی دلایلی هست. این یکی از اون دلایله. یکی از دلایل یا منابع شادی مسمر ثمر بودنه. شادی بزرگ از این به وجود میاد که شما بدونید کلام خدا توسط شما موعظه میشه و کار خدا توسط شما انجام میشه. و خدا شما را مانند وسیله ای به کار میگیره دانستن اینکه شما کارهای بیهوده انجام نمیدید و تمام کارهای شما ثمر داره شادی آوره شبان جوانی رو میشناختم که میخواست با شبان پیدی در اداره کلیسای او کار کنه بعد از اینکه که به او تعهد داد و به جمع کارکنان خدمتی اون کلیسا پیوست او رو به شهری چهل کیلومتر اونورتر فرستادند و وادارش کردند که کلیسای ماهواره ای در اونجا تأسیس کنه او دلش نمیخواست این کارو بکنه. او دلش میخواست با شبان کار کنه. وقتی اینو به او گفت، شبان مسن به او این آیه رو نشون داد. هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود، میتواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند. شبان ارشد به او میگفت، شما از این واقعیت لذت میبرید که من مسمر سمر هستم. این چندان دوامی نخواهد داشت. چون منبع شادی شما برای شما اینه که مصمر سمر باشید میوه های خودتون رو به بار بیارید، کار خودتون رو انجام بدید این شبان جوان چقدر ممنون بود که شبانشو رو وادار به کار کرده بود و به او گفته بود که میوه بیار این برای تو شادی بخشتر از اینه که از میوه آوردن من شادی کنید این چیزی بود که عیسی داش میگفت شما باید میوه بیارید تا شادیتون کامل بشه این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. بعد عیسی میگه باید مسمر ثمر باشید چون من انتخابتون کردم که میوه بیارید. من آیه 16 باب 15 یوحنا رو خیلی دوست دارم. عیسی به این مردانی که تصمیم گرفتند به او متحد باشند و او را پیروی کنند گفت شما مرا اید بلکه من شما را برگزیدم و معمور کردم که بروید و میوه بیاورید. میوهی که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. کلمه معموریت دادن در این آیه به معنی مأموریت برای خدمت نیست. این کلمه یونانیه که تنها سه بار در این جیل ذکر شده. معنی اون به معنی استقرار راهبردی بردی هست. روشیه که یک سردار لشکریانش رو در صحنه نبرد مستقر می‌کنه. این چیزی که منظور کلمه معموریت در این آیه هست. بنابراین ایسا داشت به اونها میگفت شما باید میوه بیارید چون من شما رو به لحاظ سوقلجشی در جایی قرار دادم که میوه بیارید این میتونه روز تمام شاگردان مسیح رو مهیج کنه خواه شما فراخوانده شده باشید که یک تاجر باشید و یا یک پیشه و یا خونده شده باشید که یک مادر و همسر باشید در هر کجایی که قرار دارید باید ملزم بشید که شما توسط عیسی به طور سوقلجشی در اونجا قرار گرفته اید و باید سمر بیارید این میتونه زندگی شما رو مهیج بکنه ششمین نصیحت عیسی برای اینکه به شما بگه باید مثمر سمر باشید اینه. شما باید میوه بیارید چون من تاک هستم و شما شاخه ها بدون من شما نمیتونید کاری بکنید اما بدون شما من هم کاری نخواهم کرد میوه در این مثال بر روی تاک رشد نمیکنه اون بر روی انتهای شاخه ها رشد میکنه شاخه ها میخوان که میوه ببینن اما تاک هم میخواد یک تاک برای اینکه میوه بیاره باید شاخه داشته باشه در یوحنا باب پانزده عیسی تاکی هست که دنبال شاخه ها میگرده چیزی که عیسی به من و شما میگه اینه آیا یکی از اون شاخه ها خواهید شد آیا چنان به من متصل خواهید شد که بتونید به عنوان شاخه ها میوه بیارید اینها شش نصیحتی بودند که عیسی به رسولان در بالاخانه کرد و به من و شما میگه که چرا باید مسمر سمر باشیم؟ آیا شما مصمر ثمر خواهید بود؟ عزیزان، عیسی هنوز هم تا که حقیقی است و به دنبال شاخه ها میگرده. او هنوز هم همه ما گرانباران رو دعوت میکنه که نزد اون بریم و آرامی بیابیم. آیا در او آرامی یافتین؟ دعای اینه که برای اون مصمر ثمر باشید و این درس ها شما رو تشویق کنه که در ایمانتون رشد کنید و ثمرات بیشتری بیارید. تا برنامه بعدی، امیدواریم با برکات روحانی مبارک بشید تا همونطور که محبت شدید، بتونید دیگران رو محبت کنید و همونطور که بخشیده شدید، بتونید دیگران رو ببخشید تا بتونید برای جلال اون سمر بیارید. فیض و رحمت خداوندمون، ایسای مسیح بر شما باد.